بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد شهر من درسات الدرسية الشمائلة رسول الله صلى الله عليه وسلم كإمام ترمزي رحمه الله واسكن فسيح جناته بما دار إن كتبر ويدمكنا حديث حديثات كم يقول إمام ترمزي رحمه الله حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقبي قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم قال عظيم الفم قلت ما أشكل العين قال طويل شق العين قلت ما منهوس العقب قال قليل لحم العقب قال إن أمام ترمزي رحمه الله يرى اسباب تفسیر بعض از اصطلاحاتی که در این حدیث اومده نسبت به وصف رسول الله صلی الله علیه و این حدیث اول از لحاظ اسنادیش حدیث صحیحه و در صحیحه مسلمه حدیث در صحیحه مسلمه اصلش حدیث جابر بن سمره رضی الله عنه خب جابر رضی الله عنه جابر بن سمره چی میگن یا رسول الله یاد میکنه از وصف چهرهش كان رسول الله صلی الله علیه وسلم قبلن یاد شد از دهان رسول الله صلی الله علیه وسلم و لبهاش لبهای بزرگی داشتن ضلی علیه اینجا هم سماک هم که شعبه داره ذره میکنه شعب میگه قلتو لسماک ما ضلی علفم گفتم شعبه میگه غفتم به سماک از تابعین که مفهوم این لفظ شیه ضلی علفم گفت که منظور دهان رسول الله صلی اللہ و سلم یا لبانش بزرگ بود گفتیم قبلا در وصف دهان رسول اصلا آمدی بود هم کشیده بود هم بزرگ و نق کشیده خیلی همش وسط بود یعنی رسول اصلا چه بینیش، چه چشماش چه قدش چه دهانش و همه چیز رسول اصلا وسط بود یعنی حتی موهاش نفر بود نه صاف و لخته بود رسول اصلا از لحاظ وصفش اینجا هم دهانش هم همین طور رسول الله علیه و سلام دهانی بنسبت بزرگ داشتن بنسبت بزرگ داشتن اشکل العين در لفظ اشکل العین اختلافه اینجا خب سماک میگه که چشماش کشیده بود چشمای رسول الله صلی اللہ علیه و سلم کشیده بود ولی قاضی عیراض اینجا ایراد میگیره میگه که اشکل العین بعضی از شرح دیگر از تابعین و غیر گفتن که منظور از این تشکیل چشمان رسول الله صلی الله علیه و سلم تشکیلی سفیدی مایل به قرمزی قرمزی تو چشمان رسول الله صلی اللہ علیه و سلم بود که اون قرمزی چشم رسول الله را زیبا کرد. یعنی چشمش سفیدی خالص نبود یکمی قرمزی توش بود که یک هیبتی راز از رسول صلی علیه و سلم میرسود حالا این دو تا وصف داریم نسبت این لفظی که جابر داره نقل میکنه داره نسبت میده به رسول الله صلی اللہ علیه وسلم در تفسیرش این دو تا تفسیر رو داریم این دو شرح رو داریم بعضیا گفتن چه شش کشیده بوده و بعضیا گفتن چه سفید مائل و قرمزی بوده و خیلی از لغوی ها این رو ترجیح دادن که چشمان رسول الله صلی اللہ علیه و وسلم از زیباییش سفید خالص نبود بلکه یک قرمزی توش و آخرین لفظی که اینجا یاد میکنه من هو منهوس العقب سماک میگه در این لفظ میگه منهوس العقب عقب پشت پاه است پشت پاهای رسول الله صلی الله علیه و سلم کم گوشت بود گوشتش زیاد نبود یعنی بزرگ باشه پشت پای رسول الله صلی الله علیه و سلم گنده باشه و بزرگ باشه نه گوشت های پای رسول الله صلی الله علیه و سلم خصوصا اون پشت پای رسول الله صلی الله علیه و سلم کم گوشت بود این وصف ها و پشت پای رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اوصاف زیاد داشتیم بعضی از گفتیم از این چیزها در احادیث داشتیم هرچند که بعضی هاشون اسانیدش زیف بود خب این حدیث جابر بن سمره رضی الله عنه دهومین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگه حدثنا هناده بن السری قال حدثنا عبثر بن القاسم عن اشعث یعنی ابن سوار عن أبي اسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر هو عندي أحسن من القمر حديث دومي أساس جابر بن سمرة رضي الله عنه كبازا من جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون هارشان كيس نوديش زعف دارش ولكن خب که اینجا داره یاد میکنه قبلا در حدیث صحیح داشتیم اینجا اسنادش اشعث توش هست اشعث زعیفه از لحاظ حدیثی زعیفه ولی گفتیم شواهد این روایت زیاده جناج در حدیث قبلی داشتیم جابر بن اسید رضی الله عنه میگوید رایت رسول الله صلی الله علیه و سلم فی ليله اضحیان رسول الله صلی الله علیه و سلم در شبی دیدم شبی صاف و مهتاب شب روشن ماه روشن بود مهتاب بود نور ماه همه جا رو گرفته بود یعنی همه جا روشن بود هم کامل بودن ما مهتاب هم روشنایی ما هم صاف بودن هوا خب و هم زیبایی ما در اون شب مهتاب زیبایی ما و روشنایی ما داشتم به زیبایی ما داشتم نگاه میکردم و رسول الله صلی الله علیه و سلم هر دو تاش و علی حلتون همه رسول الله صلی الله علیه و سلم هم لباسی جامعه که برتن داشت همون جامعه قرمز بوده که گفتیم قیم میگه سرخ خالص یا قرمز خالص نبود کمی آمیخته به رنگ دیگه سفید مثلا یا غیرم بود که در اون لباس زیباتر دیده میشود رسولا سلسلیم میگه فجعلتو اندورو ایلی میگه دیگه اون شب داشتم میگه نگاه میکردم شیفته بودم خوصم به نگاهم به رسولا سلسلیم دیدی وقتی کسی به قصه علاقه داره میخواد نگاش بکنه مادر دیدید دست به سر بچش میکشه میخواد نگاش بکنه یا میگه مادر واسه زنگ بچهش میذارم میگه بیا نگاهت بکنم صحابه حبش براساس بود نبود میخواستن رسول الله را صلی الله علیه و آله میگه که داشتم نگاه میکردم رسول الله را الله علیه و نگاه ما و ایل القمر یعنی دوتا تا این زیبایی ها زیبایی ماه زیبایی چهرهی را الله علیه و آله با هم دیگه داشتن مقایسه میگردن بعد میگه له عندي احسن من القمر میگه زیبایی چهرهی رسول الله نا زمان خیلی زیباتر از امواه گفتیم الان صحابه وصف زیبایی رسالت از تمامی مخلوقات بیشتر کردن یعنی از تمامی مخلوقات الله جل و او را زیباتر می دیدند نه که بشر بلکه از تمامی مخلوقات او را زیباتر قشنگتر می دیدند علیه الصلاه و السلام بعضی‌ها گفتند اینجا وصف زیبایی که جا بر داره میکنه از باب تابان بودن چهره رسول الله صلی الله علیه وسلم و زیبایی چهرش یعنی بحث نور و بحث اینا دیگه نیست بحث حسن و زیبایی هست داره موخایسه میکنه میگه دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون مخایسه هم با ما رسول الله صلی الله علیه و سلم از اون ما زیباتر بود فله و احسن من القمر از از لحاظ زیبایی از ما هم زیباتر بود قشنگتر بود بهتر بود 11 این حدیث بازم حدیثش ضعف درش هست این حدیثی که قایم خون دارس نقد صالح ابن ابي الاخضر هست و لين کنار به بشواهد جناچه ابن حجر میگه روایتش تقویت میشه و حالا هرچند که در حدیث ما قبلم داشتیم این مسائلی در این حدیث هم که بشاره شده حدیث قبلی هم هست و ما قبلا بوده امام ترمذی رحمه الله میگه حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا حمید بن عبد الرحمن الرئاسی عن زهیر عن ابي اسحاق قال سأل رجل البراء ابن عازب رضي الله عنهما كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر قلتيم درين اسناد درين روايت سندش ضعف هسه الزعفشم سفيان بن وكي احس سفيان بن وكيين حديث دروسك سندش درش ضعف ولكن امام بخاري هم روايت راس برا نقل مكينه ولكن باسناد ديگر كه صحيح همین حديث كه خونديم در صحيح بخاري هست ولي باسناد ديگر كه در سفيان ابن وكيع نيست اینجا صفیان و وکیح هست که زیفه ولی که امان بخاری از طریق ابو نعیم لواید میکنه از زهیر از ابو اسحاق که براب معازل سوال میشه از چهره رسول زسم آیا مثل شمشیر بود گفت که خیر بلکه مثل ماه بود یعنی چی؟ ابن حجر رحم الله در شرح این حدیث مسائل را میکنه بیان میکنه و اونم این که آیا مقصود سوال اون کسی که داشت سوال می‌کرد از بالا ابن عاز رب رضی آیا مقصود برراقی و درخشانی شمشیر یعنی آیا چهره رسول الله مثل شمشیر درخشان و برراق بود یعنی یا نه منظور کشیدگی هست چهره رسول الله کشیده بود گفت که خیر رسول الله چهرهش مثل ماه بود یعنی چی مثل ماه بود گردیش مثل ماه بود یا درخشش و براقیش هر دوتا رو میشه گفت از نو از درخشش رسول الله صلی علیه و وسلم گفتیم خب یک نوری یک برراخی در چهرش بود بود بخاطر سفیدی پوستش که مائل به خرمزی بود نه اینکه خلقتش از نور بود نه حالا میاد ان این مسئله رو هم اشاره خواهیم کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم چهره نورانی بود و غیر از اینکه رسول الله صلی علیه و وسلم چهرش هم نزدیک به دائری بود گردمانند بود کشیده نبود چهره رسول الله علیه وسلم بلکه بود سر رسول الله صلی بزرگ بود، کوچک نبود این گفتیم حتی جسم رسول الله صلی و سلم بدنش و مفاصل بدنش و درشت بود دستاش درشت بود رسول الله صلی و حتی سرشم و چهرهش نه کشیده بود نه ای کامل بلکه نزیک به دایری بود همونطور که از لحاظ طولی قد رسول الله صلی الله علیه نزدیک به درازی و بلندی بیشتر بود تا کوتاه و کوتاه که نبود اصلا رسول الله صلی الله قد دا بلندی داشت ولی نه اونقدر زیاد بلند متوسط بود از لحاظ قد و قامت بس این وصفی هست که بر ابونعازب داره نسبت به رسول الله صلی الله از و چهره که مثل ماه داره وصف چهره رسول الله صلی الله علیه و میکنه دوازدهمین حدیث امام ترمذی رحمه الله واسكنه فسي حد میگوید حدثنا ابو المصاحفی سليمان بن سلم قال حدثنا النظر بن شميل عن صالح بن أبي عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وغفر الله له ولأمه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر إن ليس لك في هذا الشعر صالح بن أبي که اینم حجر میگه در باب متابعات این اگر شاهدی داشته باشین حدیث قابل قبوله که شواهدش ما قبلا داشتیم از روایت برا و دیگر اصحاب رضوان الله علیهم اجمعین که بس پوست رسول الله صلی الله علیه و سلم داره میکنه ابوهری رضی الله عنه میگوید کان رسول الله صلی الله علیه و سلم ابيض رسول الله صلی الله علیه و سلم سفید بود ولی نه سفیدی خالص چنانچه در روایت دیگه ولی خب سبزه هم نبود بلکه سفیدی مایل به قرمزی یک قرمزی در پوستش بکسن و زمانی که رسول الله صلی الله علیه و آله مثلا روزی وارد مسجد شد دید که صحابه دارن بحث قضا و قدر میکنن ناراحت میشه میگه فاک انما فق فی وجه حبه الرمان انگار که دانه اناری در چهره رسول اساسن ترکنده باشه قرمز شده بود قرمز می و صاحب وقتی که ناراحت می خشگین میشد رسول الله صلی الله علیه پوستش سفید بود ولی خب سفیدی که درش قرمزی بود نه خالص کأنما صیغه من فضه انگار از لحاظ لمعان و درخشش و درخشندگی و براقی انگار که شهرهش از نقره هست یعنی انگار که اون زیبایی پوست رسول الله صلی اللہ از لحاظ درخشش و زیبایی و صافی خصوصا رسول الله صلی موهاش کم پشت بود موهاش کم بود موهاش بدنش باهاش دستش بله ریشاش موهاش پرپشتی داشت ولی مویتنش نه خودش سینه مثلا یک موی خفیف و نازکی روی سینهش بود و روی دستانش یعنی خود رسول الله صلی الله علیه و چنانچه وصفش داشتیم کم مو بود موهاش کم پشت بود به خاطر همین با اون زیبایی پوستش اینجوری داره صحابی بحثش میکنه انگار که قطعی از نقره است از درخشش و لمعانش رجل شعر موهاش که قبلان داشتیم و رسول الله صلی الله علیه و نه فر بود و نه هم صاف و لخته بود بلکه ان کمی داشت موهای رسول الله صلی الله علیه و سلم که گاهی به بغل می‌انداخت و گاهی به عقب پشت سر خودشون اون می رو و گاهی تا لاله گوش بود گاهی هم رو سر دوش و شانه هاش موهای رسول الله صلی اللہ علیه و سلم بیشتر اوقات بلند بود مثل دیگر اصحاب یاران اون موقع عرفشون بود چه مشرکش چه مسلمانش موهاشون همه بلند می‌کردن این عرف جامعه اون روزی بود به خاطر همین حالا ما میگن اینها تلالت بر سنت بودن نمیده که مثلا ما فکر کنیم که این کار سنته که موهاو بلند کردن سنته نه طبیعت غذاشون طبیعت لباسشون اینا عرف جامعه اون روزی حالا چی میخوردن با چه هایی با چه چیزی اون نونومو پختن غذاشون می‌پختن اونا عرف جامعهشون بوده دیگه ما مکلف نیستیم که همونطور کنها غذا میخوردن به همونطور کنها میپختن ما هم همونطور پخت و پس داشته باشیم یا همونطور لباس بپوشیم یا همونطور فرم موهامون باشه نه اینا سنن فطرت یعنی اینا چیزای طبیعی هست که الله جلاله در خلقش گذاشته و و تصرفشو به دست خود بندگان داده که اونطوری که دوست دارن اون کار رو انجام بدن طبق وفق جامعهشون و عرف ج خبرين بالسيزة ومين حديث أمام الترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرني الليث بن سعد عن بالزبير الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروى بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرأ من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرأ من رأيت به شبها دحية إن حديث أسلش دار صحيح مسلم أسلش نديث صحيح بل الرواتش أزؤون روات متقنين خصوصا قتب المسعيد وليت بن مسعيد تبا أتباعا ك متقنة كجزة أصانيدة تلويها صاميشة جا بر اینجا در این روایت میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن عرض علیه الانبیاء بر من عرضه شدن پیغمبران حالا عرضه شدن در خواب یا بیداری حالا بعضی گفتن در معراج ولی خب معراج بعیده بر من عرضه شدن یعنی نشون داده شده به من پیغمبران الهی احتمال داره در خواب باشه احتمال داره در خواب باشه و احتمالم داره در بیداری باشه چنانچه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به اسلام معراج رفت بعد که برگشت عزی اسرار معراج مشکل رو منن سوال پرسیدن تو مسیر چی دیدی چی بود چی نبود بعد میگه الله جلو جلاله چشام آورد در بیداری جلو چه چشام آورد بیت المقدس او همه را جلوه چشام آورد که بهشون وصف بکنم چی بود چی نموند خب در بیداری هم رسول الله ص ص گاهی نشونش داده میشه خب اینجا رسول الله ص ص میگه پیغمبران بر من عرضه شدند و در روایت دیگر روزی رسول الله صلی الله علیه و اسلام در حج بودند رسول الله ص یک بار بیشتر حج نرفتن اونم حجۃ الوداع سال 10 هوم یک بار امری رفتن ولی حج نه یک بار. حج اسلام حسن بعد از اینکه تشریع شد دیگه اول نماز و بعد روزه و اینا تشریع میشه دیگه آخریش هم حج بود که تمام شد اسلام با اون کامل میشه بود. بر ما فرضه غیر از اون کلمه توحید کلمه شهادت این گفتن نماز بر ما فرضه و بعد روزه و بعد زکات و بعد هم هم حج فرضه تک تک ما بر ما واجبه اگر استطاعتش رو داشته باشیم من استطاع استطاعت مالیش رو داشته باشیم من جسمی وزیفه نریم که ب کافر نمیشیم ولی گناهکاری گناهمون هم کبیره کسی که استفادت داشته داشت خب رسول الله صلی الله علیه و ابتدا میرن مکه عمرشون انجام میدن از احرام بیرون نمیان چون با خودشون قربانی برده بودن به دیگر صحابه هم دستور میده که از احرامشون بیرون بیان خودشون حلال کنن یعنی اینکه موهاشون بتروشن عمرشون کامل بشه و بعد سب بکنن تا اینکه روز تربیه بیاد روز هشتم و برم به منام. رسول الله صلی خودش از حران بیرون نمیاد به خاطر گفتیم قربانی که باهاش برده بود هدیه که با خودش برده بود. رازرا شو میگیر رسول الله صلی منا یکی از اون جاهایی که داره مسجد خیفه مسجد خیف اونجا اتراق میکنه رسول الله صلی و آله نماز میکنه رسول الله صلی الله حدیث خیلی جالب و قشنگی هست حسن اون یکی حاج یک, یک شکوهی داره یک عظمتی داره اون من سرزمینه منا اونجا عبارتی از یک سرزمین هایی بوده وسط کوه ها یک جاهایی که بشری نبود خوصا قبل از این که ابراهیم کعبر آنجا بنا بکنه به واعدن غیر زرعه خود ما که سرزمینی بدون زرعه بدون هیچ آب علفی منا هم همینطور مزلفه هم همینطور حرفه هم همینطور حرف هر هم هم کدوم از این شعائر یک جایگاهی داره یک مکانتی داره که آدم را میکشونه جذب میکنه یعنی اون سرزمین حج دل مسلمانی نیست مگر شیفته‌ای ایستادن اونجایگاه که پیغمبران الله ایستادن از ابراهیم گرفته تا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله مثلا در وصف بمناره رسول الله صلی الله علیه و آله اونجایی که سنگ بجمرات می‌زنن رسول الله میگه بهترین روز دنیا بهترین روز دنیا چه روزیه روز سنگ جمرات روز قربانی روز عید قربان در منا با شکوه و بهترین روز نزد الله جل وعلا خیلی حرفا که انسان این توفیق رو داشته باشه جایی بیسته که بهترین روز دنیاست. وقد عرفه به طرف در اون سرزمین این سرزمین مناس اون سرزمین مقدس عرفه از غیر از سرزمین خود مکه اینا خارج از مکه اند عرفه مزلفه و منو خارج از مکه اند هرچند که جزء ولی بلی خارج از مکه اند محدوده خود بس الحرم خصوصا محبتهایی که در خونه خدا هست اینا هر کدوم یک سرزمین های خاصی یعنی هستند که یک قداست خاص خودش داره عرفه رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که الله جل و علا به دنیا میاد افتخار میکنه مباهات میکنه با ملاک بگی ببینید بی اینها بندگان منن اومدن و برای من اومدن خواسته دنیا ندارن اومدن که من اونا رو ببخشم شاهد و گواه باشید ها رو بخشیدم شاهد و گواه باشید ها رو بخشیدم همه رو بخشیدم پزلی استادن در اون مقامه یک روزم در سال معرفه یک روز در ساله اونجا این تو را پیدا بکنی رسول الله میگه کسی نیست ذراعرفه بی است مگر اینکه برمیگرده انگار که از مادرش تولد شده، زایید شده. صفر، خالی از هر گناهی، پاک الله پاک پاکش میکنه. فصله چه سرزمینی اونجا، قداستش زمانی زمانیه. سنگش، خاکش قداست نداره. یک زمانی، در یک وقتی الله جل و علا این شرف را در اون گذشته اونم در اون روز عرفه اونجا بیستی و این مقام را پیدا بکنی. قبل خب من از عرفه گفتم من از منا گفتم بهترین روز مکه که به جای خودش دیگه همه تو میدونه خونه خدا هست اون سرزمین مبارکه اون جایی هست که فرشته میاد زیر پای اسماعیل علیه السلام میزنه اون چشمه گوارا اون چشمه زمزم جاری میشه که از زمان ابراهیم تا الان اون چشمه سرازیر و جاریه سرزمین مخدسه اون نمازش ست هزار بار نمازی که هست اینا همهش فضیلته ها فضله خب برین بر بگردیم الان به مسجد خیف و این حدیثی که الان داریم میخونیم رسول الله صلی علیه و در مسجد خیف نماز خوندن گفتن در این مسجد میدونید صلا فی مسجد الخیف سبعون نبی افتاد التناس پیغمبران در این مسجد نماز خوندن بعد نام میبره منهم موسی علیه الصلاه و السلام از جمله اونها موسی هست کعنی انظر الیه انگار که دارم نگاهش میکنم من چون این حدیث شرح این حدیثی هست که داریم میخونیم خاطر امین اینجا کنارش وردم میگه انگار که دارم موسی رو میبینم نه گواش میکنم و علی اباتانی قطوانیتان دو تا عبا پوشیده دو تا که دوتا جامه پوشیده یکی همون ازار و یکی هم که روی دوشش از اون ازار انداخته یکی هم که دوره کمرش شده سفید رنگ قطوانیتان عبای سفید کوتاه کوتاه پوشیده بود یعنی خب قدش هم موسی علیه السلام بلم بود و هو محرم در حال احرام بود اومده برای احرام برای حج موسی علیه السلام علی بعیر من ابل شنوئه بر روی شتور از شتوران شنوئه، شنوئه قبیله ی حسس. قبایل یمن قومی بودن که به شکل شمایلشون، چه به خودشون، چه به حیواناتشون میرسیدن، آراسته بودن قشنگ بوده. خب وصفش میکنه رسول الله صلی و وصف خودش روی شتور احرامم پوشیده سفید رنگ، مختومون به خطام لیف و اون بینی هاش مهاری بر بینیشه آبیز گشته از لیف بافته شده از اون تناب، له ظفیرتان که مهیم و بافته شده بود یعنی خود موسی علیه السلام موهاش چون معمولا موسی علیه السلام هم صاف نبود ویز بود که اینجا رسول الله صلی الله علیه و داره وصفش میکنه که بافته شده به خاطر همین که دیدید یهود موهای خودشون از بغل میبافن به رسم همون زمانی که موسی علیه السلام موهای خودش رو میبافت خب اینجا داره رسول الله و از موی موسی علیه السلام میگه حالا خصوصا اینجا که در مسجد خیف شتور میگه انگار که دارم میبینم همینجا ایستاده یعنی به راست اساسا هم ای عرضه شده انگار این عرضه شدن در حال بیداریه میگه انگار که دارم میبینم این جلو چشاش در حال بیداری اینجا هم رسول خدا در این حدیث هم همین قضیه را بیان میکنه میگه عرض علی بیا بر من عرضه شدن پیغمبران فید موسی دیدم موسی علیه الصلاه والسلام ضر ومن الرجال از لحاظ طولی وسط بود میانه بود از میان مردون یعنی قدش نه بود نه قدش کوتاه مثل رسول خدا میون قد بود قزاز قد و قامت و جسمش موسى علیه الصلاه والسلام وسط بود و رب من الرجال این وسط بود از بین مردم که انه من رجال شنو گفتیم مش که یکی قبیله از قبایل یمنی که معروف بودن از لحاظ اعتدال جسمی قوت جسمی و اون قد و قامتشون و اون ورزیدگیشون و اون چارشونگیشون مردان قوی بودن که موسی را علیه الصلاه والسلام تشبیه میکنه به اون مردان یمنی قد و قامت داره اون با شکوه و آراسته خب این واسه موسی علیه الصلاه این وصفی که میکنه خود رسول اساساً این وصف درش رو چه یعنی چنانچه در حدیث قد داشتیم هر چکه خود رسول اساساً بعد وصف ابراهیم را میکنه کنه میگه من شبیه درم به ابراهیم ولی اینجا فقط وصف قد را می کنه و قوله و رايت عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام فاذا اقرب من رايت بي شبها عروه ابن مسعود بکذا صحابه رضی الله عنه عروه ابن مسعود میگه عیسی را دیدم علیه الصلاه والسلام انگار که عروه ابن مسعود حسد لازم شباهت از لازم شکل بعد میگه و رايت ابراهیم موسى بعد حیثا و بعد ابراهیم عليه السلام. فاذا اقرى ومن رأيت به شبه صاحبكم يعني نفسه نازك ترین کسی که شباهتش داش مان صاحب شمايان که خود راسال سلما من منزورم نازک ترین کسی که شباهتی براساس داش میخوای بصف ابراهیم را بدونی نگاون مبکونیت که من شبیه درم به ابراهیم عليه السلام شبیه درم به ابراهیم عليه السلام چون راسال سلما از نسل ابراهیم عليه السلام و عرقم چنانچه چل راسال سلما گفته عرق و دستاس چی؟ انسانه، جنش، از جن آب و اجدادش درش هست. شبیه یا اون از جن مادریش میگیره یا از جن پدریش میگیره. از یک، از اون آب و اجداد یک شمایلی خواهد گرفت. یا بینیشه یا چشماشه یا نمیدن ابروشه یا رنگ پوستشه. میبینی پدر و مادر هر دو تا سفید همراه با چشون در میاد سبز و سیاه. چرا؟ چون یک جنی یک جای مثلا یک کنیزی یک برده تو این خانواده بوده این از همون نسله. دلیل برید نمیده که مثلا چون آقا این رنگش متفاوت از پدر و مادرش بچه اینها نیست یا الی آخر نه ژن یک جایی از این ژن یک درزی میزنه حالا رنگ پوسته یا رنگ شکل و شمایل از جهت پدری یا از جهت مادری و اینجا رسول الله صلی الله علیه و میگه من شبیه‌تر من به ابراهیم علیه الصلاه و السلام و رایت جبریل جبرئیل علیه السلام از نوره ولی که زمانی که میومد نظر رسول الله صلی الله علیه و به شکل صحابی میومد. اومد یک از اصحابش که دحیی کلبی هست زیبا بود خوش‌شهره بود بغتر همي رسول الله صلى الله عليه وسلم هيك فإذا أقرأ وما رأيت به شبها دحية نازك تلين كاسيك جبريل ودعون شكلك ميومات بشكل بشري دحية كالبي هاش زيبوترين أصحاب وترضوان الله عليهم أجمعين دحية كالبي خير زيبوت وجبريل وقتك ميومات بشكل دحية كالبي ميومات رضي الله عنه بنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 نشد در حدیث معروف خطاب داریم دیگه حدیث جبری اومد زانی به رسول, با رسول, ما ما رسول الله صلی الله علیه و آله نشسته اصحاب فکنك از خودشونه باللباس زیبا پاک تمیز و من بعد پرسید رسول الله صلی الله علیه و آله مال الاسلام مال ایمان و احسان رسول الله صلی الله عن سعيد الجريري قال سمعت أبو الطفيل رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما باقي على وجه الأرض أحد رآه غيري قلت صفه لي قال كان أبيض مليحا مقصدا إن حديثا سنجح صحيحة ودر صحيح مسلمة أسلوه سنودي صحيح أبو الطفيل رضي الله عنه إن جادر بسفر صلى الله عليه وسلم بيكون قبل زينك بسفر ويكون ميجي بيكو كي رايت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الارض احد الا هو بر بري زمین دیگه کسی نیست غیر از من که رسول الله دیده باشه یعنی از صحابه دیگه کسی نیست جز من کسانی که ثانی که دیدن هم رفتن فقط من موندم کسی دیگه باقی نمونده نم من آخرین از اصحابم که چشمشون به رسول الله دیدشون روشن شده به چهره رسول الله صلى الله عليه وسلم این توفیق رو پیدا کرده گفته شده سال 100 هجری گفته شده قبل یا بعد از اون فوت شده الان میخواهم خاطره هاتومات جز آخرین اصحاب یاران رسول الله صلی الله علیه و آله که وفات یافتن خاطر همین اینجا میگه الان دیگه کسی غیر از من نیست که رسول الله صلی الله علیه دیده باشه یعنی همه مردن فقط من باقیه کعن ابيض رسول الله صلی الله سفید بود گفتیم علی خودنا سفیدی خالص مایل به قرمزی ملیحا ملیح از ملاحمیات از جمال و حست و زیبایی میاد رسول الله صلی الله زیبا و قشنگی داشتند اون خوشگلی و زیبایی که انسان از دیدنش سیر نمیشه مقصدا مقصد گفتیم از قصد میاد از وسط میاد رسول الله صلی الله علیه و سلم وسط بود چه از لحاظ طول قد و چه از لحاظ رنگ پوست و چه از لحاظ موهاش نفر بود و نه صاف و لخته رسول الله صلی الله علیه و سلم از لحاظ تمامی اون اوصاف جسمیش نسبت به دیگران وسط بود که اینجا گفتیم ابو ثفی رضی الله عنه داره وصف رسول الله صلی الله علیه و سلم می 15 حدیث إمامة الترمذي رحمه الله مذياد حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن المنذري الحزامي قال حدثنا عبد العزيز ابن ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل ابن إبراهيم ابن أخي موسى ابن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريبن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلجت ثنيتين إذا تكلم رؤيك النوري يخرج من بين ثناياه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلجت ثنيتين الثنيتين تهرد عن إن حديث أفل فقد أزلوهز إسناديش بقام حديث درش عبد العزيز بن أبي ثابت الزهوري هاس كما حديث زعف الشديده بله خب این اوصافی که داریم در این حدیث در راحه الصحيح گذشته اومده بعد گفتیم از باب اینکه بالاخره آشنایی داشته باشیم به لغت عربی اون معانی که در این حدیث اومده رو خواهیم گفت که جا بیفته برای ما و بفهمیم که مفهوم مقصود این حدیث چیه ابن عباس رضی الله میگوید میگه ی ادر رسول الله صلی الله علیه و سلم دندون‌هاش میانش فاصله بود که یک نوع زیبایی از عمد کسی بیاد بین دندون‌هاش فاصله بندازه گناهکاره رسول الله سلام من کردن که تون تغییر در خلق الله جل و علیم. یک زیبایی محسوب میشه بخاطر خاطر همه از قدیم ابروها رو از یک طرف میکنند، دانونها رو فاصله میگذاشتن و الی آخر. ولی خود رسول الله سلام منظم بود و بینشون فاصله بود. اینها تکلم زمانی که صحبت میکرد، روی که نوری خروج و من بین ثنايا. زمانی که صحبت میکرد، انگار که انگار که از لابلای اون دانونهاش نور داره در میاد. ما گفتیم حدیث که به زافش یه طرف. ف... اینکه بعضی ها اومدن سناد که رسول الله صلی الله علیه و نور ازش میتابید این غزافگویی است قلعه اترا هست رسول الله صلی الله علیه و من از و غلوف درش لا ترون کم اطرته النصارى بن مریم در عيسى بن مریم غلوف کردند اترا کردند حق نداریم غزافگویی بکنیم بکنیم سرایی بکنیم در رسول الله صلی و رسول و بشری بوده قل انما انا بشر مثلكم يوحى در بح ما بشری بود فرزندی از فرزندان آدمه، از بشره، از خاک و گله مثل ما، فرقی نمیکنه از نور نبود جنسش، جنس خلقتش اینها که این وقتی که میگه انگار، بالفرد صحت این روایت انگار که نور از لابده دندانش میمن، من منظور اون نور معنوی حسی نیست اگر نور حسی بود، آنچه ما یاد کردیم، امین عایشه در قصه میگه که شبی دیدم رسلا ساسم نیست در خونه رفتم شب تاریک بود راسمیرا علیه الصلاه و السلام شب یا گاهی میرفت قبر رسول سلام و قبر بکنه و دعایی بر اونها و یا گاهی می تو مسجد نماز میخوند میگه شب خیلی تاریک بود دست کشیدم دیدم تو مسجد اومدم وارد مسجد شدم خب کنار خونه حجره ام نو نماز میخوند میگه وارد مسجد شدم از تاریکی نمی دیدم دست کشیدم که ببینم رسول الله صلی الله علیه و کجاست دستم خورد به پاهای رسول الله صلی الله یعنی چی؟ یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم نور نبوت، خواغا خب نور بود که اون عاش شب باید می‌دیدش. نور نبود. شب تاریک بود و رسول الله صلی علیه و سلم جسمش مثل جسم بقیه ما. رسول الله صلی الله علیه و سلم می خوابید طبیعتش بشری بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم گرس در جنگ خنده صحابه زمانی که یک سنگ به شکم بسته بودن، رسول الله علیه و دو تا سنگ به شکم بسته بود از گرسنگی. رسول الله صلی الله علیه و قرار بود از نور بود بعد زمانی که از مکه هجرت کرد به مدینه. و مشرکین را میدیدن شب هنگام زمانی که در تاریکی حرکت می کرد یا در زمانی که در غار بود بالای غار ایستاده بودند پرت پرتوا شعاع نور جسم رسول صلی الله علیه و می از خارج از غار ولی که اینجینی نبود نور رسول صلی الله علیه و آله اگرم نوری نسبت داده شده اون نور چیه؟ معنوی حسی نیست چراغ نبود که روشن بشه نور نبود که ازش تابیده بشه ولی که یک درخششی بود درش یعنی اون تابانیش نسبت به زیبایی چهرهش بود کشانگی چهرش بود روشن بودن پوستش بود نه اینکه ازش نوری تابیده میشد اینا قلوب مثل قلوبی که حالت تصوف میکنن در گفتیم در جشن های مثل مولودی که برایش محلقهام میگیرن و بلند میشن و وس میکنن انت فوق نور نورو تو بالاتر از نوری بود تو از نوری و که حتی گفتیم از بزرگان احل تصوف هم از موسیق در مواهب و غیر همه انکار کردن که میگه میشه پیغمبر زنده باشه خب این وصف خدایی داریم بهش میریم خدا هست که فقط حی و قیومه همیشه زنده است پیغمبر مرده در زمانی که زنده بود همه جا نبود یا در مدینه بود یا در بد بود یا در احود بود این نبود که در همه جا باشه الان که مرده در همه جا از در مکه از در مدینه هست پیش ما است هست مگه میشه و بعدا در هر محفلی شرکت بکنه در این مولودی و اون مولودی بعدا بگیم که نه از نور بوده نه نه این خلاف حادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم از این که جسم بشری داشت مثل دیگر بشر مریض میشد چناچ در مرض وفات رسول الله آب و کنار دستش گذاشته بود از تب غش می کرد از تب غش می‌کرد آب را آب و را بر پیشانی خودش می پاشید بر سر صورت خودش تا به هوش بیاد در جنگ احد که اصحابش کشته شدند شهید شدند رسول الله صلی الله خود بر فرق سرش که فاطمه رضی الله عنها میگه با چرا آتش دادم چون خون فورام می کرد توی سر رسول الله فرو بردم که خون بند بیاد بشه آتش زدم کبران نکنه خب بشر بود از این نبود جنسش مثل دیگر بشر همون گوشت و استخونی که ما داریم رسول الله صلی الله علیه وسلم داشت و غلوب نکنیم در رسول الله صلی الله علیه وسلم در شأنش در شمایلش اینها وصف قیافه قد اندام رسول الله صلی الله علیه وسلم چنانچه در روایت اومده در این 15 تا حدیث بعد از اون دیگه مؤلف میره به باب بعدی دومین باب باب و جاء فی خاتم النبوه اون چیزی که درباره ختم نبوت اومده اون محر یا اون نشانه یا اون خالی که دلالت بر نبوت میده یک که گوشتی بوده میان راست و سلام از پشت میان دوتاشانه هاش که به سمت چپ نزید تر بوده یک نشانه ای از جنس پوستی گوشتی به اندازه تخم کبوتر رنگش مائله به سرخی بود سفیدی مائله به سرخی از جنس پوست رسول الله صلی الله علیه وسلم به اندازه گفتیم تخم کبوتر یا تخم کبک گوشک این که به دوش چپش نزدیکتر تر بود میان نشانه هاش از پشت حالا بریم به اون چیزی که در روایت ها اومده در وصف این نشانه ختم نبوته که رسول الله صلی الله علیه بر دوشش بوده فقط یک اختلافی هست این که این نشانه حین تولدش هم بود یا نه بعدن گذاشته شده اون چیزی که در روایات اومده و اشاره شده اینه که زمانی که رساله سلام بچه بودن و اومدن قلبش رو شستن با آب زمزم اون زمان بود که این ختم این نشانه رو گذاشتن بر روی شونهاش قبل از اون نبوده نمیحینه ولادتش نبوده والله و خب بریم به 16 همین حدیث امام ترمزی رحمه الله میگوید حدثنا ابو رجع قطيب بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن وقال يا مفتم شجعيد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول ذهبت بخالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع ذهب بعض الوقت وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة والتوضأ فشربت من وضوعه و قمت خلف ظهریه فنظرت الى الخاتم بين کتفه فاذا هو مثل زر الحجله صاحب نویزید صحابی بود گو چه میگه که خالا کهوزی مریض میشه یا میوفته در بعضت روات ایسای بخاری اومده که میوفته امن حجرم میگه که پاش صدمه میبینه وقتی که میوفته پاش صدمه میبینه خالش اسم خالش نمیده کی بودی الله خالش خالص و بلند میکنه میبره نزد رسول الله صلی الله علیه و آله برای مداوا و دعای خیر و برکت کردن دین بچه به صاحب بن میگه که اومدم نزد رسول الله ما رو اوورد ابن یزید لی رضی الله عنه لمن او نزد رسول الله صلی الله علیه و آله اولین کاری که میکرد رسول الله صلی الله علیه و آله بچه رو که میدید دست به سرش میکشید از باب مهر مهربانی و مهرورزی به اون بچه دست به سرش میکشید از باب لطف گفتید حسین وقتی که مریض نیازم به دلداری داره الان افتاده یا مریض شده در رنج میبره صاحب مریضیت رسول الله صلی الله علیه و سلام به بسرش میکشه تا اینکه اگر هم تب داره اون بالاخره خب با هم دست کشیدن سبب میشه یکم خنک تر بشه تنش تا قلبش پایین بیاد یک نوازشه این نوازش خیلی مهمه بچه خصوصا وقتی مریض میشه یه به نوازش داره و هدفم از خوندن این احادیث رسول اساسم اینه که ما یاد بگیریم آداب تعامل با بچه‌مون با مریض ببین پیشش دستی به دستش بکشیم این نوازش را کم نگیرید پدرت مادرت خصوصا بزرگ میشن سنی ازشون میره نمازششون کن دستشون بگیر براسل الله صلی الله علیه نگاه کنید یاد بگیرین ازش با اون هیبتی که داشت با اون وقاری که داشت بچه‌ای که میانم پیشش مثلا نوازشش میکنه دستشو سرش میکشه میبوستش گاهی مثلا میاد در روایتا خصوصا حسن،, حسن حسین گوشون میکرد نمازشه خب بچه رو نوازش کرده رسول الله براش میگه میگه برام دعا کرد و در علی بالبرکه برکت دعای خیر و برکت کردن این برکت تمامی امور خوب و خوش و نیک را برای اون شخص در بر گیره یعنی دعایی کرد که من مشمول خیرات الهی بشم مشمول خوبی های الهی بشم پر خیر و برکت بشم مبارک باشم خیر و برکت در جانش در تنش در فرزندانش در همه چیز مبارک باشه هم دلالت بر زیبایی و هم در زیادی هم میاد. خسن انس را دیلاعن وقتی که میگه رسولا صحتم داعی برکت برام کردن گفتن که الله بار الله هم مالش زیاد کن هم فرزند اشتیاد کن میگه که من صدا اندی بچه الله به هم داد سی و اندیشون خودم با دست خودم دفنشون کردم عمرم زیاد شد مالم زیاد شد این دای خیر و برکت از نسل خودشه سی تا از نسل خودم میگه با دست خودم دفنشون کردم اناس رضی الله میگه این دای خیر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اینجا هم صاحب بن یزید هم خودش هم اقرار میکنه میگه که جعید بن عبدالرحمن میگه رایت السائب ابن یزید ابنه 94 دیدم 94 سال عم داشت انگار یک جوان اوراست دای برکت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. انگار یک جوان 14 ساله، از 15 سال است از, از تنومندی و جس و قد و قواره و از اون راستگی تنش جلدا معتدلائيه یعنی درش محکمی، و استواری بود تنومندی بود صاحب بن یزید برکت دعا بعد اون خودش هم میکنه میگه خودش بعد گفت که بله نه چشم ضعیف شده نه گوشم ضعیف شده سن که بالا میره گوش و چشای ضعیف میشه میگه نه چشم ضعیف شده،, شده نه گوشم نه تنم دعای برکت رسول الله صلی الله علیه بعد خودش میگه که رسول الله اصلا برام دعا کرده سال که هجری وفات یافتن صاحب بن یزید عمرش 96 سال بود زمانی که فوت کرده از صحابه که سنشون بالا رفته و با بلی صفت و محکم و کسانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برایشون دعایی خاص کردن و مشمول اون دعای خاص رسول الله صلی الله علیه و سلم شد. خب بعد که دعا کردن وضو گرفتند رسول الله صلی الله علیه و سلم و توضّع فشاری بتومین وضوی وضو گرفتند در کاسی درون وضو گرفتند رسول الله صلی الله علیه و سلم که اون برکت تن رسول الله صلی الله علیه و سلم هدر نرسه حباه آبدان رسول الله صلی الله می گرفتن یا عرق رسول الله جمع میکردن یا موی رسول الله ص از باب تبرک و این نزعه سنت خاص رسول الله ص یعنی اینکه بگیم فرزندش نوهش و نوادگانش و صحابه رسول الله ص همسرانش نه صالحی از صالحینه نه این خاص رسول الله هیچ کسی از صحابه رسول الله این کار را واغر از رسول الله نکردن که بوجوی کسی را غیر از رسول الله ص از باب تبرک بگیرن یا عرقش یا موهاش علان ادعا میکنن در ترکیه موهای رسول الله صلی الله علیه و و تو ویترینی گذاشتن و نمیدونم تو پارچه هایی از حریر گذاشتن نه نیاز به سند داره صحت و معلوم نیست نه شمشیر و نه لباس و نه اون موها همش والله اعلم هم بدون سند و من در وردیه جایی با سند قاطع نداریم که اثری از اون آثار رسول الله صلی الله باقی مونده باشه اگر باقی مونده تبرک بون درسه از مویا از لباسش چون بالاخره آثار عرقش روش بوده رسول الله صلی الله اون آثار جسمیش از باب معجزه برکته. جسم رسول الله صلی الله علیه و اعتقاد ماست. میگی که رسول الله صلی الله علیه و آله وضو گرفتن و منم از اون آب وضوی رسول الله صلی الله علیه آثار اون وضو نوشیدم. نوشیدم از اون فضل و رضوان باقی مانده وضوی رسول الله صلی الله علیه و آله چون بلاخره گفتیم اون آب از روی تن رسول الله صلی اللہ علیه وسلم عبور کرده و آثار رسول الله صلی الله علیه وسلم از اون عرقش بانمیخته شده و این برکت را با خودش حمل کرده و قمت خلف ظاهره. دیگه خوب میشه. همون شخصی که افتاده پدر داره بچه هست دارد و فراموش میکنه میگه بلند شدم رفتم پوشش سر رسول الله صلی الله علیه وسلم. و سلم و قمت خلف ظاهره. رفتم یا میگه بچه بودم اومده روی دوش رسول الله علیه و سلم بیست یا آخر بازی میکنه میگه بلند شدم رفتم پوشش سر رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدم ت تعیز گوش نشانه نه اون خاله سیاهی که بعضی ها دارن رو نه اون خاله سیا نبود، اون نشانه سیاه نبود بلکه تیکه گوشتی، سفید، مائل به قرمزی از جنس پوست رسول صلی اللہ علی و سلم بود که اندازه تخم کبوتر یا تخم کبک بود چنانچه وصفش در کتابهای پیشین همچون تورات از کتابهای که الله نازل کرده بر موسی و دیگر پیغمبران وصفش در اونجاها اومده با حاطر همین سلمان فارسی زمانی که میاد به مدینه جویای این ختمه میشه که متلاقه بوده برش در کتاب‌هایی که الله نازل کرده بر پیغمبران پیشین میدونسه که این نشانه در اون کتاب‌ها هست اگر این نشانه رو دوش پیغمبر علیه السلام بس خود پیغمبر میاد بعد میگه این نشانه ها رو دیدم روی های رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینجا صاحب بن میگه رضی الله عنه فنظرت الى الخاتم بين كتفي نقا کردم به اون نشانه که نشانه ختم نبوت بین نشانه های رسول الله صلی الله علیه و فاذا فا هو مثل زر الحجله انجار که مثل یا همانند تخم نوعی از انواع کپک ما گفتیم در بعض از رواعته آمده تخم کبوتر اینجا آمده تخم کپک انگار که به اون اندازه است اندازه یک بنده انگشت. نه کوچکتر و نه بزرگتر یعنی تقریبیش زیاد بزرگ نبود اندازه یک بنده انگشت. تخم کبوتر همه دیدید و میتونید بفهمید که حجمش چقدره افده همین حدیث امام بترمذي رحمه الله من حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامه ان حديث لش زاف هاس قسان درس نودي أيوب بن جابر هاس بن سيار كزائفة بلقوا بحديث أسلش دار؟ صحیح مسلمه حدیث از اسرائیل از سماک رواید شده که همین چیزی که شما اینجا دارید در صحیح مسلم ما داری اصل حدیث صحیحه حالا یه چیزی که من دیدی که لبخند زدم ابتدای اسناد خوندم تام امام ترمزی میگوید حدثنا سعید و یعقوب الطالقانی طالقان تو ایرانه ترمزی خودشم قبلا جز ایران زمین بوده نیفه همون فارس زمین که الان جز الله توی تمام این شهرها از کرج گرفته هم کرجی دارید تو تهران که ری قدیم ائمه رازی دارید همه محدثان ابن نبی حاتم و ابو حاتم رازی بخاری دارید مسلم نیشابوری همین حدیث خودش در صحیح مسلم نیشابوریه خراسانیه شرق و غرب ایران بری همه محدث بودن همه شیفته رسول الله صلی الله علیه و آله بودن سخنانش بشنون از وصفش بشنون شیفته سخنش بودن شیفته اوصافش بودن افعالش بودن از ها بلند شدن تا اینکه بشنون، تا اینکه برای من و تو نخ کنن ولی من و تو سبحان الله قلب سیاه شده اون دلی که باید ایمان باهاش آمیخته بشه و آثار ایمانم از محبت رسولی صلی علیه و محبت الله و بندگان مخلصش در اون قلب شکوفا بشه اون قلبه بخاطر اون زعف ایمان اون قلبه تاریک شده اون قلب دیگه اون شکوفایی قدیم رو نداره اون بهار و اون زیبایی که با محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم آله زیبا چنانچه اینجا داریم در این احادیث با اون شیفتگی که اینا دارن نقل میکنن اون دیگه نیستش، ایمان و محبت الله جل وعلا سبب میشه اینها زیبا انسان با محبت بشینه کنار سخنان خود رسول الله صلی الله علیه وسلم بشینه بشنوه با شیفتگی با شوق با علاقه دل دل, دل چنانچه رسول الله صلی و وسلم واسپش میکنن مثل یک زرفیه این زرفه یا سیاه یا سفیده سفیدی که قلب مؤمنه گناه که میکنه نقطه سیاهش درش گذاشته میشه در اون قلب هی تار میشه هی تیره میشه تاریک میشه تا اینکه به سیاهی کشونده بشه دیگه رنگ و بوی دیگه به خودش نمیگیره سیاهی دیدید قرمز زرد سبز انواع رنگ توش برزید سودی نداره ولی کن سفیدی نه سفیرینا رنگوبه خودش میگیره ایمان اینطوریه شما میشنوید اینجا سخنان ابراهیم رسول الله صلواتش وصفش والله درم میگم عروزه دارید حتی اگر شده هم در خواب رسول الله صلواتش ببینید با این و صافی که اینجا دارن صحابه میکنه اون لذتی که اینها آوردن دارن وصفش میکنه از مازی زیباتر بود میخوای این زیبایی رو ببینید دیدین مثلا عروس داماد مثلا مردم جمع میشن داماد کجاست اومده میخوان داماد رو ببینن میخوان ببینن زیبا زیبا نیست خوشگل خوشگل نیست چه زنشه چه مردشه خب اینجا بس زیبایی رسول الله صلی الله علیه و قشنگیش که میشه از ما هم زیباتر بوده از همه مخلوقات زیباتر بوده میگه میشه انسان ایمان در قلبش باشه و شیفته ی رؤیتش نباشه نمیشه و این یکی از महکای است که انسان میتونه به خودش بزنه چقدر شیفته ی رسول الله صلی الله علیه و چقدر دوست داره که را ببینه به همون اندازه هم ایمانته به اون اندازه‌ای که محبت رسول الله صلی الله علیه و و محبت دیدنش خب جابر بن اسد رضی الله اینجا وصف اون نشانه نبوت را میکنه اون خاتم و اون خالی که دلالت بر نبوت رسول الله صلی الله و ختم نبوتشه میگه رایت الخاتم بین کتفی رسول الله صلی الله و اون نشانه نبوت رسول الله صلی و, و ختم نبوتش پایان نبوتش که خاتم الانبیا هست نبوت باش خاتمه یافته دیدم همچون قدی هست تکی گوشتی قده تکی گوشتی مثل بیضة الحمامه انگار تخمک ابو تری در بعض از روایات آمده که این نشانه خالی سیاه رنگ بوده، بعضی جا آمده سبز بوده، نورانی بوده، انگار که مثلا میدرخشیده. این همه روات های باطلی هست یا ضعیفه، صحت نداره. بلکه همونطور که گفتیم، چنانچه در این حدیث هم داریم، قده حمراء. این قده این تکه گوشته سرخ بود. یعنی همون سفیدی که در روایت قبلی هم داشتیم که مایل به سرخی بود، مثل پوست رسول الله صلی الله علیه و ولی خب اینجا یکم سرخیش بیشتر بود که بروز انتی که گوشت را بد نسبت باقیه جسم رسول الله صلی الله علیه وسلم سرخش بیشتر بود نسبت باقیه. ولی خب مثلا تشریح دارم میگم مثلا توخ مکبوده. اجدهامین حدیث. آخرین حدیث هم شبمون. امام ترمیذی رحمه الله میگوید حدثنا ابو مصعب المدینی. قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن جدته رميثة رضي الله عنها. قالت سمعت رسول الله صلی ولو أشاء أن اقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربي لفعلت يقول لسعد بن معاذ رضي الله عنه يوم مات اهتز له عرش الرحمن عاصم بن عمار ابن قتادة رحمه الله ان جاء مدار مده بزرغش نقل مكنه صحابي هست رميثه رميثه مدار بزرغ عاصم دروبين حديث إن حديث بالمستدامه مع این هم ترمذی رحمه الله روایت میکنه و حدیثم البانی تصحیح میکنه برو که گفتی مادر بزرگ عاصم که روی حدیثه نقل میکنه قبل از اینکه نقل بکنه سخنی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده یک حرفی میزنه میخواد یک حرفی از رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد بکنه اسم رسول الله صلی الله علیه و سلم که یاد میکنه بیاد رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواد حرفی رو نقل بکنه انگار که رسول الله صلی الله و خودش داره ولو اشاء ان اقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربي لفالت يا اگر میتونسم یعنی که ببوسم اون نشانه و اون ختم نبوت اون نشانه نبوتی که پشت رسول الله بود روی شونه هاش بود اگر میتونستم بخاطر خاطر حالا محبت رسول الله صلی وسلم و قربش به رسول الله صلی اللہ این کارو میکردم یک نشانه خاص بود از طرف الله جلل وعلا یک تیکه گوشتی که دلالت بر برگزیدگی و سید الخلق و سید الانبیاء بودن رسول الله صلی اللہ علیہ میده انواع شرف و خصلت در این نشانه جمع شده نشانه نبوبت جمع شده از بس که محبت رسول الله صلی الله علیه و داره میگه اگر میتونستم می بوسیدم اونجا رو یعنی شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانه که سعد کسعده و معاذ رضی الله عن فوت تشود چنین فرمودن اهتز و عرش الرحمن قال یک گوشه ای از این حدیث یک گوشه ای از این حدیث که اینجا ما بخاری میاره وصف چیه نشانه نبوت اون قطعه گوشت که بین نشانه های رسول الله صلی و بود و که گفتیم به دست چپ رسول الله صلی الله علیه بود این بچه شاهده ولی خب یک طرف اینجا میزنه هدفش این نبود که این قسمت را بگی از ختم نبوت هدفش یه چیز دیگه بود میگه شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که چنین فرمودند در مورد سعد و معاذ اهتز له عرش الرحمان ادربس روایت هم دیگه لرزید عرش الله جل و علا از محبتی محبت کنی سعد بن از خوشحالی به سعد و بعضی روایت همیده فرشتگان خوشحال شدن به وفات سعد بن معاذ کی بود این سعد بن معاذ کی بود که عرش الله بتکون در میاد از خوشحالی که داره سعد درهای آسمان بهش باز میشه تمامی درهای آسمان بهش باز میشه زمانی که فوت میکنه کی بود این سعد که درهای آسمان براش باز میشه این حرف حرش الله جل و علا که تمامی مخلوقات بزرگتره چنانچه در بعض از حادیث اومده که کل آسمان ها و زمین در مقابل کرسی الله مثل یک حلقه انگوشتره در یک سرزمین بهناور کرسی در مقابل عرش یک حلقه کوچک که در یک سرزمین بهناور هیچ چی نیستن مخلوق در مقابل عرش عرش با اون بزرگیش با اون عظمتش مرگ یک صحابی او رو بتکن در میاره از خوشحالیش هم گفتم از این که سعد داره میاد به دیدارشون سعد داره روحش به با اونجا بالا برده میشه درهای آسمان براش باز شده برای تشجیع جنازش هفتاد هزار تن از ملاکی اومدن که گاهی پا بر زمین نذاشتن کی که الله فرشتگان رو برایش فرست داده؟ کیه سعد امه رضی الله عنه کی؟ چیکار کرده؟ عرضشش تو چیه؟ الله اکبر مسعب رضی الله عنه رسول الله بعد از اینکه بیعت میگیر از انصار میفرستدش مدینه سید اوس بود صد و جوانی هم بود سی سالش بیشتر نبود زمانی که فوت میشه در مریضی که فوت میشه سی و سال بیشتر نداشت جوانی بود ولی سرور قومش بود او را به بزرگی و نباهت و عقل و خرد قبول لاشتن زمانی که مصحب بن عمر میاد به مدینه برای دعوت دادن سعد و نمعه رضی الله عنه میگه برم ببینم کی این مصحبی که داره دعوت به دین الله میده دا داره که دین الله و محمد مصطفی رسول الله و عصبانیت میاد وقتی که مصبر را میبینه و حرفش و دعوتش را میشنوه دعوتش بر دلش میشینه نها کنید دعوتگر و ارزش دعوتش حرف سخنان اون دعوتگر میگه بر دل من نشست اومدم قومم اون دعوت دادم سعد و نوم جلوه اوسیس دادم من را میشنسید میاد از خوبی‌های دین میگه از خوبی‌های آنچه که شنیده قومشو دعوت میده کل عوالم و خنان زیبایش و اون دعوتش همه مسلمان میشن همه شیفته رسول الله صلی الله علیه و سلم میشن و شیفته قدومش میگه چقدر بود بین 12 هجری یک سال بعد از اون رسول الله هجرت میکنه میاد به مدینه میگه چقدر بود یک سال یک دعوتگر انقلابی در مدینه ایجاد میکنه همه شیفته محمد مصطفی صلی الله و یارانش میشن خونه ها و منزل هاشون اوس و خزرج نصف میکنن بین خودشون و مهاجرین الله اکبر این ایمانه این ایمان با چی این چنین شکوفا میشه در دل اوس و خزرج امسال دعوت گرهای مخلصی همچو سعد بن معاب اینها هستند که مرگشون عرش رو به در میاره اینها هستند که محبوب به درگاه الله هستند اینها هستند که فرشتگان خوشحالی میکنن به اینکه به, این که به نزشون اومده الله اکبر ارزش دعوت ارزش دین و به سوی دین الله جل و علیه دعوت دادن این دعوت رو کم نگه شیچ سال تو دعوتم بیشتر نبود ولیکن اینقدر ارزشمند بود نزد الله جل وعلا. و این و سخنی هم هست که رومه داره نقل میکنه از رسول الله صلی اللہ علیه وسلم شنیدم اینچنین در سعد ابن معاذ میگه والله این جلالت این مکانت، این جایگاه این شکوفایی این شخص نزد الله جل و علا و مخلوقاتش از اون فرشتگان غیر از اون مخلوقاتی که بر روی زمینه سعد بن عبد زمانی که جنگ بد میشه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که بلند شید بریم به جنگ با مشرکین حرف جالبی را میزنه حرفی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به دلش میشینه چی میگه سعد بن عبد وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سرشون میخواهد که برن به جنگ با مشرکین سعد بن معاذ رو رسول الله صلی الله علیه و آله میگه میرا یاری میکنید به جنگ با مشرک که میگی یا رسول الله بنی اسرائیل که بگیم تو خدایت برو با اونها جنگ نه یا رسول الله اذهب و ربك و نحن معك مقاتلون بیا رسول الله بیا به جنگ با اونها ما هم با تو می جنگیم خود ما هم ریخته بشه در راه دفاع از دین نصرت دین بزار خون ما ریخته بشه بله این شهامت بله این شجاعته بله این دعوت راستینه بله با اینها هست که هر الله جل و علا به تکون در میاد و این چنینین رو داره سخن رسول الله صلی در بیان شکوه وفات این صحابی داره یاد میکنه اهتز له عرش الرحمن این چنین رسول الله صلی الله زمانی که سعد وفاتی یافتن ولی این شکوه الله جل و علا مرگو این چنین حس خاتمه ای به ما بده و با نیکی و یاد نیکی از دنیا بریم سبحان الله وبحمدک سبحان الله وبحمدک صلی الله علی محمد و آل محمد